سوره انعام آیه سی و یک خب دقت بفرمایید قد قدم آورده محققا به تحقیق خسر خسران ورزید الَّذِينَ به بِلَغَاءِ الله کسی که لقاء الهی رو تکذیب کرد خب حالا تکذیب لقاع خدا یک مرحله تکذیب تکذیب لفظیه کسانی که مونیکرن میگن که آقا خدای چی؟ یا اگه خدا را قبول دارن قیامت چی؟ مقام لقاع رب یعنی چی؟ اینا رو ویل کنید آقا ما آمدیم در این دنیا چند سباهی بزنیم و بگیریم و بخوریم و ببریم تا میتونی اگه رشته انتخاب میکنی پول رو انتخاب کن اگه رفیق انتخاب میکنی کدوم به درده دنیات میخوره یعنی ملاک لقاء رب ملاک دنیایی بودن. کدوم رفیق انتخاب میکنی؟ به درد دنیام بخوره. روز مبادا پول میخوام بهم بده. اگر تو فلان اداره مشکل پیدا کردم بتونه پارتیوازی کنه، مشکل منو حل کنه. اما اگر بگه آقا با کی رفیق میشی؟ اونی که به درد لقاء رب به من بخوره. از کی میبری؟ اونی که منو از لقاء رب دور میکنه آقا ای خیلی پول داره، روز مبادا بهت پول میده. پول به من میده ولی من از خدا دور میکنه پس خسران این است که یک تکذیب لفظی میکند میگه حرفا چی آقا چند روزه دنیا رو ببین بزن بگیر ببر بخور تموم شد یه وقت از تو مقام لفظ میگه نخیر قبول دارم خدا هست لغا رب هست خیلی هم لغا خوبه ولی عملا داره تکذیب میکنه کتاب مینویسه در لقای رب بسیار قشنگ. سخنرانی میکنه در لقای رب بسیار قشنگ. میخواد تحلیل کنه هدف آفرینش لغای رب است برای انسان قشنگ تحلیل میکنه ولی عملش چیزی که در او نیست برای لغای خدا و این تکذیب هست یا نیست؟ اینکه که تکذیب فعلیه. تکذیب فعلی یعنی عملی. تکذیب عملی، تکذیب فعلی. از تکذیب قولی برای کسی که قولن قائل است گناهش بیشتره طبق آیه لما تقولون ما لا پس اگر ما میگیم آیه رم میخونیم انک کادهن الی ربک کدهن خب قرآن رو دیگه قبول داریم قائلیم ما حرفو میزنیم ولی اگر در عمل برای لغا رب عمل نمی کنیم قرآن که میگه قد خسره این که خسران ورزید خب ما نمیخوایم تو زندگی تو هر زمینه دیگر وقتی داریم یک کاری میکنیم یک اقدامی میکنیم مگه نمیخوایم منفعت گیرمون بیاد آقل کاری میکنه که خسران کنه آقل برای ضرر حاضر نیست تا چه برسه خسران خسران که بدتر از ضرره. یه مزرعه به من میدن توش چهارتا درخ بکارم میگم چیکار بکنم که سودی گیرم بیاد یه زیرپلهی رو اجاره میکنم توش چهارتا جنس میدیدم بپروشم مسلماً یه برنامه ریزی میکنم که ضرر گیرم نیاد. تا چه برسه به خسران اون وقت عمرم و در این نشعه دارم خرج میکنم و دم از قرآن و پیغمبرم میزنم برای امثال منی که میگم قرآن و قائلیم خدا رو قائلیم. و قرآن داری میگه اگر تکذیب لغای رب کردی محققا خسران ورزیدی عد خسره تکذیب لغای رب ممکنه بگی استغفرالله من هر روز این آیه رو میخونم میگم تکذیب فعلی چی؟ آیا عمل ما عمل در راستای لغای ربه؟ عملی که در راستای لغای ربه نشاناش چیه؟ چگونه باید باشه؟ حالا پس این آیه سوره انعام آیه سی و یک داره قد خسر الذين به لغا الله حتی ازا جاعت همو ساعت و ساعت در اینجا یعنی قیامت وقتی قیامت میاد یعنی این نشعه تمام میشه این کاناله تمام میشه وارد اون مرحله‌ای میشیم که بناس از اینجا تمام بشیم بریم اونجا اونجا باید معلوم بشه من تو مرحله لغای ربم تو مرحله خدای نکرده عذاب الهیم حتی اذا جاحتم و ساعت و بقتتن غالو بقتتن رو برای چی گفته؟ به سرعت دنیا تموم میشه بقتتن یعنی ناگاهانی یه دفعی در سوره مؤمنونم قرآن میفرماد فردای قیامت وقتی بگو نحکاران میگن چه وضعی شما دارید؟ علم تکن آیاتی تطلو علیکم و کنتم به هاتو کذبون مگه آیات خدا رو بر شما تلاوت نکردن انبیا نیومدن شما تکذیب کردید تا میرسن به اونجا شما کم لبستن فل ارزه عدد سنین مگه چند تو کوری زمین بودید؟ کم لبستن فل ارزه عدد سنین تو شمارش سال حساب کنید؟ مگه چند سال بودید؟ که میارزید این کارا رو بکنید قالو قران میگه و من قالو جواب میدن لبسنا یومن او باء از یوم فصل یه روز بود یا قسمتی از یک روز بود قرآن آقا شوخی که نداره با من شما یعنی وقتی وارد عالم معنا میشیم اینقدر دنیا کوچولو جلوه میکنه هفتاد سالم بود از دنیا رفتم هشتاد سالم بود از دنیا رفتم صد سال عمر کردم از دنیا رفتم به قدر این عمر هفتاد هشتاد نوت صد ساله در آخرت بی بیارزش جلوه میکنه که قرآن میفرماید این عده خودشون میگن لبسنا یاومن او از یاومن فسال العادی نمیدونیم یه روزی بود قسمتی از یه روز بود لذا بختتن هم به همون راستا میشه یعنی یه چشمه قیامتم قیامت هم شد در نشئه حقیقی عالم وجود خب حالا وارد میشه قالوا یا حسراتنا الا ما فرطنا في ها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساعمایذ رون یه دفعه چش قیامت رسید. تموم شد ما که هنوز مثلا فکر میکردیم حالا نه به سرعت گذشت بعد اینجاست که هی میزنه به تعبیر من رو دست خودش یا حسرتن و وای ما چه حسرتی چه ندامتی چه پشیمانی اگر طبق آیات قرآن این حسرت در فردای قیامت امکان جبران داشت خیلی مشکل نبود بله خوب حالا ما اشتباه کردیم میگن باش آقا جون بیایید فردا قیامت یه کلاسایی دیگه اینجا گذاشتیم اینجا جبران میکنید میگه نه تمام شد دیگه فرصتی برای شما هرچه بناس از این مرحله به بعد برای شما مقرر شد به اختزای نحوه زندگی بود که در همون زمان محدودی که حالا میگید نمیدونم یه روز بود یا قسمتی از یه روز بود همون معلوم میشه.